رخداد، نادرستی نظریهای های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، با و یاد آفریدگار یکتا با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همراهان صدای امید به خصوص همراهان برنامه رخداد. در قسمت هشتم برنامه که خدمت دوستان ارائه دادیم نقدی که از قسمت پنجم مونده بود به خصوص مسئله تولید متن و همچنین گرایش به خود متن محض در میان ایرانیان و نقد اون و به اضافه این انقطاع تاریخی تولید علم در ایران و غرب مورد بررسی قرار دادیم. جناب آقای ایران مهر در خدمت شما هستیم. بنده پیشنهاد میکنم که از این برنامه، برنامه که قسمت در واقع هشتم هستش، شش تا نظریه که در مورد حیات توی غرب و کلا تو کل دنیا تا حال تاریخ علم مطرح بوده بنده اون رو مطرح بکنم بعد وارد بحث اثرات منفی که در واقع نظریه داروینیسم که یکی از نظریه های حیات هستش بلد. بشیم اگه اجازه بدیم پیش از این مطرح کردن این بس من یک هاشیهی بگم بفرمایید که وارد وارد خود بحثش هم نشیم درست چون ما رو از اصل این برنامه‌ای که بر این مبنا تهیه داره میشه دور میکنیم دور. تو بحث‌های ما با آقای دکتر محبی چون بحث حساس میانش فرهنگ شرق و غرب و رفت و برگشتش رو داریم بحث میکنیم این گاهی خب نظریهای مختلفی هست در این بارا آقای یکی از نظریه رو مطرح میکنن و چون مربوط به بحث ما نیست خب طبیعیه که وارد بحث اصلیش هم نمیشن درستش هم همینه اما فقط <تصفح> گاهی برای اینکه خواننده ها بتونن مثلا یک دو یا چند نظریه متفاوت رو در این باره بدونن که هست بله ولو که مربوط به موضوع بحث ما نباشه و ما بهش داخل نمیشیم گاهی بنده یک حاشیه‌ای میگم و میگذریم هیچ مشکلی درباره بحث اینی که مترجمین با ما چه کردن بله یعنی مترجمین متأسفانه به خاطری که بر بعضی موضوعات نداشتن آسیب زدند به ما تو صدره گذشته همون آسیبی که منشیان در قرن هفتم به ما زدن بله، آسیبی که به زبان فارسی زدن این تقریبا مشابه اونه در باب زبان فارسی نظریه های گوناگونی هست مدافعین مخالفین فراوانن از جمله دکتر محمود حسابی که همهشون به عنوان فیزیکدان میشناسن اما احاطه بالاتر از سطح استاد بر زبان و ادب فارسی و زبان و ادبیات عربی داشتن دقیقا بله همینطور آیه زندگی استاد دستاد پور که ایشون نظرشون این بود که واژگانی که غرب برای هر چیزی سازه رو اصولاً چیزی دم دست زبان انگلیسی به اون صورت نیست هست اما تمام کم و کسریاشو دست میکنه و از توی زبان لاتین میکشه بیرون و ارائه میده بله اما در ایران به محض که کسی دست ببره در زبان پهلوی و بخواد یک ز... واژه را از پهلوی بکشه بیرون بگه بزر آقا این به باستان گرایی و چه و چه و چه متاسفانه بله متاسفانه بله این یعنی هر چی برای اونا خوبه انگار برای ما بده بده و حالا میگم این دیگه هاشیه یعنی میشه بعضی از زبان فارسی که ما باید اصلا بریم از دوستان اجازه بگیریم یه برنامه جدا در این باره بل. اصلا بر. این پس این که از این پس بدونی که نظریه متفاوتی در این باره بل. هست برای بل. بل. مثال میگن چیزی که اونا میساز رو نباید ترجمه کرد یه مثالش هواپیماست بله خب حالا گیریم هم که ما که میدونیم اولین پرواز کجا انجام شده طبق تاریخ اما گیریم هم که اونا ویل به رایت کیسیس کردن و یکی بیاد بگه من پلین سوار میشم میتونیم بگیم نه دیگه،, دیگه کسی میتونه بگه من سافت وير رایانم نصب میکنم همه میگن نرم افزار حالا این میگم این بحث پس حالا اینجا میبندیمش و اون بحثی که چرا اروپایی یا غربی ها همه چیزشونو میگن مایم و ما بازماندگان یونانیم همه طبعا. چیز ما از عرستو و جالی و بغراد آغاز میشه اینو اصلا این یک میکنم. نقدی داره که ما زمانی که خواستیم اون بحث که های دکتر فرمودن وارد بحث اصلی نقد نظر داروین بشیم اونجا میشه یک بحث بسیار جالبی مربوطه با بحثمونم اتفاقا باز کنیم که اونجا در خدمت های دکتر محبی بل بل خواهیم بود خواهش میکنم ببخشیم های دکتر در تایان بخشت. این بنده باز دوباره. این چیز بخش ببینیم شما چی میفرمایید تا در اون باب با بتونیم با هم گفته خیلی هم خوبه بله بتف... نه خواهش میکنید واقعا بحث اگر فقط یه حالت روتین داشته باشه در واقع برای شنوندگی خسته کننده میشه بله. همین حاشیه هاست که در واقع تو ایران هم معمولا حاشیه از مت شیرین تر این چیز عجیبی هم نیستش و بله اصلا برخی واژه‌هایی که در ترجمه ساخته میشه در طول زمان در واقع جا میفته خیلی هم خوب همین کردیم هواپیما ای آید حداد عادل میگفتن واژه دوسیه وقتی پرونده براش پیشنهاد شد این شده بود لطیفه تو اداره بلد. ولی خب بید. اما آدی یه آدی مدت از گذشت الان شما بره دوسیه همه بهت میخند دقیقا عادی میشه البته یه چیز حاشیه دو دقیقه هم منم من بگم متاسفانه یه حالا درست بله زبان و فارسی قدرت تولد واژگانش خیلی بالاست شکی درش نیست اون عرض بنده بیشتر تولید علمش رو از دست داده بود ولی در داخل جامعه هم متاسفانه یه آسیب بسیار بزرگی که ما داریم قدیمی های ما چون گلستان میخوندن حافظ میخوندن بله فرهنگ واژگانی که داشتن خیلی واسع بل. بود بانک واژگانشون 1300 1500 تا واژه بود ولی الان نه الان چی الان چون بسیار سطحی است الان فکر میکنن که اصلا دنیا یعنی گوگل بابا گوگل 2 سال تو وایبر چه واژه‌ای واقعا میگم دیگه جمعا 300 تا 350 تا واژه من سه شده، گرخیده، چی شده؟ چاکی فقط این واژه آس، واژه شده واسه ما اس بده، نمی‌دونم مین ده. یک مین بعد من میام و میگم ما که دیگه نمیفهمیم چی میگم. اس بده، اس بده، نمی‌دونم دقیقاً بخاطر دکتر من یک ارزی بکنم در این باره علم که فرمودین، اینو من دیگه چون رو ندارم نقل قول از دهای دکتر سید حسین Nasr میکنم. آید دکتر سید حسین Nasr میفرماین که یه سخنانی کردن تو انجمن زبان فارسی در آمریکا. اگه دوستان مراجعه کنن اونو بخونن زبان فارسی و هویت ملی بله. این خیلی سخنرانی جالبی بود حالا یه بخشی رو درباره خط گفتن که اون حالا اینجا اصلا بحثش نیست درباره علم گفتن نقدی که به زبان فارسی میشه میگن که این زبان فارسی نمیتونه در باب فلسفه وارد بشه چرا چون معرفه و نکره نداره این, این گفت بنده فقط هیچی نمیگم یک کلمه ارز میکنم که دوستان مایی که این نقدو میکنم برن اساس حاصل اقتباس خاجه رو و دین دونتوز. رو بخونم بله بعد بیان اینجا با هم با حرف میزنی ببخش می میکنم حالا پس از بیام تو توی متن ما تا نظریه درباره تشکیل حیاث توی تاریخ علم تا به حال داشتیم بله. نظریه اول نظریه حیات خلق و ساعه هستش که بانی اون عرستو بوده فلسفه یونان باستان که اصلا حالا یونان باستان هم به جاش بررسی خواهیم کرد که بوده برد. ایشون حالا نه اصلا کل یونان باستان که اصلا منطقی بود چنین سیستمی چنین تمدنی تو اون دوره شکل بگیره اصلا این مال کجاست آیا در تاریخ تحریفی صورت گرفته یا نه حالا بماند فکر کنم من اصلا دو سه در این مورد خیلی چون دلپوری دارم دو سه برنامه با هم خواهیم داشت اصلا اصلا این یکی از مباحث اصلی مونه چرا ارجا میدن نوزای اروپا رو به یونان, یونان. اصلا واقعیت داره؟, واقعیت داره واقعیت داره یا بله که اونجا ارسطو بوده و اعتقادش بر این بوده که موجودات زنده از اجسام بی جان بلد. ساخته شدن میدونین که تو فلسفه اونا که بر فلسفه همون ارسطویی آشنایی دارن و فلسفه غرب خوندن فل... نگاهی که عرستون نسبت به خالق و داره خداوند سانع هست <تصفيق> <تصفيق> نه خالق چون اون چیزی که تحت وانا خالق ما میشناسیم خصوصا توی قرآن و اسلام ازا اراد یقول الله کن فیکون <تصفيق> <تصفيق> از هیچ به وجود میاد عرستون معتقد نه نه خود اون ماده بوده خداوند در به شکل به شکل در آورده به شکل مثلا انسان در آورده سنعتگری, سنعتگری کرده, سنعتگری کرده. مثل یک نجاری که مثلا این درخت رو میبرون این درخت رو تبدیلی به در میکنه با. تبدیلی به در واقع چیزهایی مختلف میکنه بهش جان میده بهش روح میده عرستو این با که بس معروف هستش به نظریه حیات خلق و سایه دومین نظریه نظریه بیوژنریس هست بیوژنریس بانی اون پاستور بوده لوی پاستور یکی از بزرگتن فرانسوی, بله. فرانسوی بوده بله و نازاج اون بود که زنده زنده رو میسازه او اون معتقد بود که تمام موجوداتی که در وقت زنده هستن، موجود زندگی بعدی رو خودشون میسازن ولی ولی اینکه این موجود زنده اولیه چجوری شکل گرفته در اون مورد نظری نداده. آیا دکتر میدونی اینو در برابر چه کسانی گفت که؟ در برابر کسانی گفت که میگفتن که مثلا مگس کرم مگس که ما رو گوشت گندیده میبینیم بله. از اون گوشت پدید اومده. دقیقا. بله. گفت نمیشه. امکان بس. نداره این باید از یک مگس زنده دیگه پیدا اومده باشه دقیقا بله, بله. نظریه سوم نظریه خلقت مستقل است که این نظریه برگرفته از کتب آسمانی بوده میشه کتب آسمانی و خصوصا کتب ادیان ابراهیمی گرفته شده و طرفداران اون به این بابر که موجودات زنده به صورت مستقل خلق شدن بله و از تک تک دونه بله. تک, تک دونه بدون خلق شدن حیوانات جمادات موجودات یا اون. در امال هایی که ما توی قرآن داریم که فی ستت ایام این در شش روز حالا این شش روز چی هستش ما باز هم به جاش بحث خواهیم کرد تفسیر علما تفسیر مفسرین مختلف اصلا این شش روز چی هست که خداوند در شش روز این جهان رو آفرید منظور خداوند من چی بوده که حالا جاش نیست چون وارد بشیم الان حاشیه هستش و در قسمت های بعدی در واقع متن خواهد بود نه هاشیه. نظریه چهارم نظریه کیهانی هستش که این نظریه بیان میکنه که موجودات زنده برای اولین بار از سیارات دیگر وارد زمین شدن و در واقع علل اون را هم با وجود عجایب هفتگانه میدونن مخالفین این نظریه هم برای این باورند که عبور از جو زمین امکان پذیر نیستش این البته الان هم تا حدودی ثابت شده یعنی از خارج سفینه فضایی خود یک انسان حتی مثلا موجودات زنده‌ای که مثلا پرنده هستن اینها از جوز زمین واقعاً نمیتونن قبر بکنن البته این نظریه طرف داره. هنوز هم طرفدارانی داره که از کورات دیگه این مسئله اومده مثلا این عجایب هفتگانه نمیش عجایبی که عجایب هفت هفتگانه مثلا اهرام مصر هستش که معتقدن که عقل بشر حتی عقل بشر فعلی هم هنوز تشخیص نداد که این سازه بزرگ اصلا چطوری ساخته شده اما منظورتون پس آمدن حیات به زمین نیست آمدن نوعی تمدن به زمینه بله، مثل تم... فاندانیکن و بله. آیساگ آسیموف و اصلا این از اینا... کجا این، نه اینا... اصلا تفتران نظریه تا حدودی در اصل پیرو داروین هستن معتقدن که اصلا انسان در واقع یک سری موجودات دیگه بودن مثلا خودتون میدونین دیگه موجوداتی بودن که شبیه حیوانات بودن اصلا نه زبان داشتن نه چیز داشتن معتقدن که این انسان ها یا این موجودات از کرات دیگه اومدن تمدن رو به اینا به اینا آموختن ری هم داشن مثلا در مورد برخی از تندیس‌های الهههای مخ... اصلا بسیاری از طرفداران این نظری معتقدن که الهههای که ما در هم مصر باستان داریم هم روم باستان،, باستان هم ایران باستان داریم اصلا اینها موجودات ماورای زمینی هن که اومدن و حتی اون تصوری که مثلا پیامبران این, نظر... این نظریه میگن ت... ت... اون تصوری که پیامبران از مثلا جبرئیل از ملائکه از دارن آسمان از آسمان ها اینا در واقع از آسمان نمیان از یک سری کولات دیگه اومدن و تمدن رو یاد دادن دین رو به انسان ها یاد دادن و مثلا انسان ها خب 5 پ... میلیون سال تو این کره زمین زندگی میکردن تو این 4000 سال اخیر 5000 سال اخیر هستش که این شکل از تمدن دینداری فرهنگ این چیزا رو در واقع اومدن یاد دادن و حتی مثلا در مورد دیوها هم حتی یه همچین نظریه هست که احتمال حالا تو برنامه گذاشته بنده ارز کردم دیوها در واقع اه... کسایی هستن که دینشون دیویسنا بوده اینها بلد. ساکنان بومی فلات ایران بودن حالا یه نظری هم یه نظری دیگه هم هست که نه اصلا اینا اینها هم موجودات فضایی بودن اینها هم اومدن در واقع برخی تمدن ها رو در واقع اومدن ساختن یا همین همینو این بند چندون گروه چندم بودن آقا دکتر بله چهارم نظریه این چهارم, چهارم هم. خب در این که این سازه ها رو میدونن که عینی که اینجا که ما تو اسطوره ها اون البته دیو دیوها به فرمان جمشید. مثلا ساختن اونا سیکلوپین دارن سیکلوپین دارن بله. اون قولهای یک چشمی که تو استورهای اجیه هست و میگن اینها اون سازه ها رو ساختن ساخن. بله این نظریه که این گروه چهارم دارن به این سبکه دیگه ها بله. ولی باز هم هنوز هم سازه های اون ستا هرم بزرگ مصر هنوز هم جای سؤال داره یعنی هنوز هم بشر به تمام سؤالاتو نتونسته پاسخ بده قیلیتون فکر میکنید تو بخش های آینده خیلی آینده بله. ما بخشی باز بشه بتونیم تو این برنامه رخداد به اینها هم یک اشاره ای بکنیم یا نه اصلا وارد این موضوع بحث ما نخواهد بود در ادامه چرا چرا میتونه باشه چرا میتونه باشه بالاخره ما میخوایم کلا در مورد در مورد نجات بحث بکنیم دیگه بالاخره در مورد آه. نجات بحث میکنیم و این هم میتونه یک مورد بحث ما باشه این بحثی اینی که هی احاله میدن به هم ما از اینایم اونا از ما و اینا اینجا بشه اینو بازش کرد ببینیم که کی از کیه بالاخره دقیقا بله ده. به موقعش حتما خواهیم کرد و شنوندگان حتما یادداشت داشت کنن که ما اینا رو خواهیم گفت که ما یه دقیقه بیشتر تا فرصه من فقط به تیتوار در واقع نظریه پنجم و شیش هم ارز کنم نظریه پنجم و نظری گرم گرمپلسم هست که به همون نظریه ش... کیهانی در واقع شبیه هستش ما این تفاوت که اعتقاد داره موجود زنده به شکل موجود پست مثلا هاگ وارد زمین شد اینو معتقدن که اصلا اون نظر قبلی معتقده که یه سری انسان‌هایی بودن اون شعور و فرهنگ ده. و زبان و حتی خط و نمیدونم سازه و مهندسی این چیزها رو از بیرون فضا آوردن این معتقد نه اصلا قبل از به وجود کل حیات حیات, اول با اول سیارک حیات... حیات... حیات... با از اون سیارکای یک سری ست هاگ‌های وارد کره زمین شد این هاگ‌ها در واقع چیزا آوردن جو شیک گرفته و اکسیژن به وجود اومد بعد موجودات اولیه و پلانکتون‌ها و بعد از اون که این بیشتر شبیه نظریه داروین هستش تو نز... قبلی هم نقدش کردیم که همون شرایطی که اون جاهای دیگه میتونسته اینا رو پدید بیاره خب همینجا هم ممکن, خب. ممکن مم... بود به وجود بیاد بله دقیقا. بعد نظریشم نظریه عالی هستش که این هم همون که شما میفرمایید اصلا اینا معتقدن که همین هاگ ها هم از کره دیگه نم تو همین کره زمین در واقع به صورت االف آلی یا با بالشیمی آل، آل، با هایی که تو کره زمین بودن آرام آرام در طی فعل و انفالاد چند میلیارد ساله دروس. اول سلول های اولیه به وجود اومدن با, با تقسیمات میتوز و میوز موجودات مختلف شکل گرفتن وقت برناممون هم داره از تمام, تمام شده چند ثانیه هم گذشته خدمت شمندگان عزیز ارز کنیم که ما در قسمت نهم برنامه در خدمتشون خواهیم بود قسمت هشتم رو اینجا به پایان میرسونیم خداوند یار و نگه دارد.